خب الان این کارهایی که امریکایی ها انجام میدن چیه؟ حمله نظامی امروز از نظر امریکایی ها یک اولویت نیست فهمیدند که در قضیه عراق و در قضیه افغانستان که تهاجم نظامی کردند ضرر کردند فهمیدند تهاجم نظامی همون ای که برای کشور مورد تهاجم موجب خطر است گاهی همون اندازه گاهی بیشتر برای کشور هجوم کننده و حمله کننده ممکن است موجب خطر باشد اینو درست فهمیدم لذا از حمله نظامی و حرکات نظامی میتوان گفت منصرفند راههای دیگری دارند یکی از راه اینه که پیش برد هدف های خودشون را در اون کشور مورد نظر که آماج دشمنی آنهاست به عناصر داخلی همون کشورها بسپرند مسئله مسئله فقط ایران اسلامی و جمهوری اسلامی نیست در همه جای دنیا اینا این کارها رو میکنن. و نمونه ها شما داریم مشاهده می یا به وسیله کودتا کسانی رو تقویت کنن که در کشور کودتا راه بیاندازن و اون نظامی را و دستگاه دولتی و سیاسی را که در مقابل آنها تسلیم نمیشود با کودتا از را بردارن یکی از راه اینه یکی از راه کشندن مردم بخشی از مردم به خیابان هاست که این انقلاب های رنگی که در جاجای جای این منطقه در این چند سال اخیر به وجود آمد از این قبیله یک دولتی سر کار بالاخره هر دولتی که سر کار میآید ممکنه اگر با 60 درصد آراء مردم هم آمده باشد چل درصد به او رأی ندادند امریکایی ها میرن سراغ اون چهل درصد عناصر و لیدرهای رو در بین آنها انتخاب میکنن با تطمیع با پول با تهدید آنها رو وادار میکنن که اون چهل درصد یا بخشی از اون چهل درصد رو بکشونن توی خیابانها ها که همین انقلاب رنگین، انقلاب نارنجی انقلاب کجا در کشورهای مختلف در این چند سال دیده شد دست امریکایی پشت این کار بود ما هیچ قضاوتی در مورد حوادثی که این روزها در منطقه از اروپا در جریان است نمیخوایم بکنیم اما انسان وقتی نگاه میکند میبیند که سناتور آمریکایی مسئول آمریکایی در تظاهرات یک اقلیتی علیه یک کشور چه نقشی توانه ایفا کنه که در آنجا حضور پیدا میکنه حضور پیدا کردن یکی از کارهاشون اینه که با کشندن گروهی از مردم به خیابانها و نافرمانی مدنی اون دولتی را که مورد قبولشون نیست و حاضر نیست به آنها باج بده این رو از کار بیندازن یکی از کارها فعال کردن گروه های ترور است را انداختن گروه های تروریست این رو در عراق انجام دادن در افغانستان انجام دادن در برخی از کشورهای عربی منطقه انجام دادن در کشور خود ما هم انجام دادن گروه تروریست رو راه بیاندازن آدم های مشخص را چه دانشمند را که در کشور ما دانشمندان رو زدند متخصصین انرژی ای رو زدند و به شهادت رسندند قبل از اون هم کسان دیگری نخبگان سیاسی، نخبگان فرهنگی، شخصیت‌های علمی، شخصیت‌های روحانی رو زدند و اینا زیر دامن آمریکا رشد کردند. بعضی هم به خاطر این خدماتی که با آمریکا کردند، مورد قبول و پذیرش آمریکا قرار گرفتند امروز منافقین در آغوش آمریکا قرار دارند در جلسات گوناگون در کومسیون های کنگره آمریکا شرکت میکنند همین عناصر منافق همین که در اینجا آهاد مردم رو کشتند بزرگان رو کشتند علما رو کشتند دانشمندان رو کشتند سیاسیون رو کشتند و انفجارات به وجود آوردن امروز اونجا با اونها هستند یکی از راهها هم این است یکی از راه, یکی از راه ایجاد اختلاف در رأس حاکمیت هاست یکی از کارهایی که اینا میکنن اینه اون دستگاهی اون نظامی که با اونها همراه نیست سعی می در اون رأس اختلاف و شکاف به وجود بیاورن حاکمیت دوگانه درست کنن خیلی جاها موفق نمیشن، بعضی بعض جاها هم متاسفانه موفق نمیشن. یکی از راه ها اینه یکی از راه ها این است که با تبلیغات خود دلهای مردم را افکار مردم را از مبانی اعتقادی و ایمانیشون منصرف بکنند و راه های گوناگونی از این قبیل و همه این کارها رو رژیم ایالات متحده آمریکا در مورد ایران عزیز ما و ایران اسلامی ما همه این کارها را انجام داده است و به فضل الهی در همه این کارها هم شکست خورده است. الله نظامی <itation> حمایت از فتنگران کشندن مردم به خیابانها مقابله با انتخابات ایجاد شکاف از این کارها یا انجام دادن یا تلاش کردن که انجام بدن و به همدلله در همه اینها ناموفق موندن چرا؟ چون ملت بیدار بود چون ملت مؤمن بود